چیزا همو تکیف اطلاع که من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ التاهرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن على قیام يوم الدين. اللهم صل سل وسل سلم على خیل الوسیعین امام المؤمنین وصل و صلی على وصل و سلم الی صدیقه الطاهره سگیدت نساء وسلم و صلی و امام زمان نا و مدار دهر نا المهدی الموعود صلوات الله علیهم اجمعین <متصفح> به حده بنده گذاشتن در این فرصت مختصر خدمت سروران معظم عرض بکنم، بحث بسیار است در مباحث هم توحیدی هم در مباحث فلسفی هم به خصوص در بحث فقه ولایی ولذا در این فرصت کوتاه رسیدگی به همه ابعاد این مسئله انصافاً کار است، به خصوص بنده تلاشم بر این هست که معمولاً در عرایزی که خدمت سروران معظم دارم یه خروجی عملیاتی ما از مباحث بگیریم بحث صرفاً نظری نباشه ولی چون به حمد مجلس مجلس اونس هست و از فرزندان امام احس السلام دور هم جمع شدیم و به خصوص همه هم انشالله اهل درد هستند و میخوان برای آینده ای اسلام و همین الان یه فکری بکنند بنده مبانی نظری رو هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ نقلی عرضی که میخوام خدمتون بکنم بفتر فشورده عرض میکنم البته ممکنه در بعضی از مباحث ما خیلی سری رد بشه که امیدوارم مبانی نظریش رو در کتاب عقلی مربوطه رفقا دیده باشد بعد به مباحث عملی بیشتر میپردازیم. پردازیم رو که فرمودن سروران معظم که بنده مصدده اوقات بشم بحث رابطه فقه به اصطلاح اسقر و اچبره مرحوم علامی بهرالعلوم در همان رساله سید و سلوک خودشون و به خصوص مرحوم علامه و مرحوم استاد این استلاح رو زیاد به کار می بردن. بحث فقه اسقر مرادشون همین فقه متداول بود که در حوزه های علمی دارج و رایج هست فقه اکبر در استلاح این بزرگواران میشد شد طریقت چون یک استلاحی بود میگفتند گفتن شریعت و طریقت و حقیقت شریعت مراد همین احکام ظاهری بود که ما موظفیم به حسب ظاهر شرع مقدس عمل بکنیم تعبوده هم طریقت عبارت بود از اون روح شریعت که ما باید با اون دستوراتی که شارع مقدس فرمود اون روح رو برای خودمون تحصیل بکنیم و به عبارتی دیگر ظاهر شریعت به, به اصطلاح دافع خطر است یعنی انسان رو از جهنم نجات می دهد بر اصل براعت اون اشتغال یقینی رو برای انسان براعت یقینی از جهنم می آورد اما طریقت می شود اون مقربیتی که عمل ما رو به توحید نزدیک می کند لذا شریعت بدون طریقت میگفتن مقرب نیست ولو که براعت یقینی رو و اینکه انسان بتواند در برابر پروردگار بگوید من امتصال ام کردم و به اصطلاح من آسی نیستم و میتواند بگوید اما مقرب نیست به عبارت دیگر اون روح توحید اونی که شارع مقدس نظر او از فقه اسقر تحصیل اون بود رو تحصیل نمی کنه. و هم دلم هست که ما میبینیم در مراتب اسلام و ایمان که مرحوم اللامه و قبل از مرحوم اللامه مرحوم سید بحرالالوم و چه بسا قبل از مرحوم سید بزرگوارانی از قبیل به اسطلاح حالا چه بسا تعبیر مرحوم اللامه باشه حالا من این رو خودم ندیدم در بیاناتشون که مثلا مثل جناب ابن فهد و مثل جناب سید چی از بله قدما الان یه مقداری اوزهایی میکنم به خستم از را رسیدم ذهنم یاری نمیکنه به هر صورت این بزرگواران اون چه میگفتن میگفتن ما مراتب اسلام و ایمان رو تقسیم میکردن که مرحوم سید تقسیماتش به 24 تقسیم میرسه مرحوم علامه به چهار تقسیم تقسیم کردن زید همون آیه شریفه ازا اصابت هم مسیبه قالو انا لله و انا علیه راجعون در اونجا میفرمایند در مرتبه اسلام اصغر و تا حدودی در ایمان اصغر فقه اصغر به کار میاد همینی که ما در حوزه های علمیه درس میخونیم و یاد میگیریم اما از مرتبه اسلام اکبر و ایمان اکبر سر و کار سالک دیگه با فقه اصغر هست نه اینکه نیست باید ظاهر شری مقدس رو تا آخرین مراحل امتصال کند. اما سرکار او عمدتا در محضر استاد با فقه اکبر است. تا بعد از مرتبه اسلام اکبر و ایمان اکبر شخص وقتی عبور می کند به مرتبه اسلام اعظم و ایمان اعظم بیرسد. یه تعبیر لطیفی مرحوم علامه دارد در المیزان. یه از اون به بعد دیگه میهمان سفره ولایت است. اوی خود نمی رود. او رو پذیرایی می کنند از اول اونها پذیرایی میکردند ولی قبلا فکر می کرد خودش داره میره. اما در مرتبه طریقت که به مراتب عالی می رسد کاملا برای او مشهود می شود که دیگران او رو می بره. این می شود در واقع می شود رابطه بین فقه اصغر و فقه اکبر ولی این رابطه رو بنده می خوام امشب با یک بیان دقیق خدمتتون خدمتون بکنم. حالا خواهش میکنم فقط بنده همراه باشید ببینید مرحوم علامه از زوایای مختلف این که شخصی در مرتبه فقه اصقر به جایی نمی رسد الا اینکه یک نگاهی به فقه اکبر داشته باشه و الا به تعبیر امام امامت رحمت الله علی در اون بیاناتشون در هم کتاب آداب و سلات هم سر و سلات، هم در نامه‌هایی که مرحوم آست احمد دارن میگن ما است که میفرماین اگر کسی در مقام فقه اصغر بماند و به فقه اکبر توجه نداشته باشه یک سلسله اصطلاحات فقط با خودش هم میکنه و آیه شریفه یعنی تمام اینها یک عوارضی است که به سرعت از می میرود شاهد قرآنیش رو ایشون نمیفرماد، ولی شاهد قرآنیش رو بنده ارزم کنم خدمتون اون آیه شریفه سوره مبارکه روم رو اگه ملاحظه فرموده باشید درمان باید وعد الله ولا یخلف الله وعده ولا که اکثر الناس لا یعلمون و چرا لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم ان الاخرت هم یعنی این وعده خداست که قطعا و قطعا من از شما دستگیری میکنم و شماها رو در مدارج سلوک و مدارج عالی می رسدم این وعده منه ولی اغلب مردم اطمینان به این حرف من ندارن ولیکن اکثر اناس لا یعلمون. چرا لا یعلمون؟ چون یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا این دو آیست با هم ارتباط بدید یعنی علت این که افراد حالا به اصطلاح امشب ما با که من برمیگردونم به بحث امشب علت این که افراد در ظاهر دین میمانند. و ظاهر حیات دنیا رو بهش توجه میکنند و در همین مرتبه فتق و رتق و امور رو میکنند به بیان معروم علامه فقط در اعتباریات دین میمانند و به حقایق دین که پشت اعتباریات هست منتقل نمیشوند چون گعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم ان الاخرت هم غافلون به این نکته لطیفی رو داره یعنی در حقیقت رابطه بین ظاهر و باطن رابطه بین رقیقت و حقیقت رابطه بین پوسته و واقعیت کسی که واقعیت نداشته باشه تو پوسته خشک بماند یه سلسله اعتباریات خشک حال من مثال عملی بزنم اگر کسی واقعا یک نمازی بخواند که این نماز او دقیقا به لحاظ فقی نماز درستی باشد ارکانش واجباتش مقدماتش مقارناتش تمام نماز بیغن بخواند، اما بدون حضور قلب نماز کامل اوورده به, ات... به اسقاط تکلیف هم کرده دیگه هم لازم نیست اما ذره این نماز رو بالا نمیبرد چرا؟ هم روایت دارد هم ادله عقلی این مطلب رو ثابت میکند. روایت رو که حتما هم لازم فرمودید در فروع کافی هست در مس... وسائل و شیعه هست در کتاب های معتبر روایی ما هست که وقتی که مسلیم نماز می‌خواند، اون ملکی که موظف از روح نماز رو به اولای بالا ببرد وقتی نماز رو نگاه می کند می بیند، نماز پوچه الیهی یه ادالو کلمت والعمل و الامل ساله اونی که بالا می نماز شما بالا نمیره، رو روح نماز شما بالا می کلمه طیب و ملاحظه بفرمایید در روایات ما دارد میفرماید اعتقاد پاکیزه ولایت اون اخلاص انسانی که نماز را میخواند به تحبیر ما میشود باید فقه اکبر به تعبیر مرحوم سیه بنابراین آنچه به سوی حق بالا میرود حقیقت نماز است پوسته نماز او بالا میبرد خب ظرف پوچ، ظرف خالی چه ای داره؟ تو اون روایت دارد که ملک میخواد ببره بالا در اون روایت شریفه امام سجاد علیه السلام است که نماز گایقات نیمش قبول است چرا؟ چون نیمش حضور قلب داشته است گایقات سلس، روب، خمس، سدس همینطوری بالا میرود تا میرسد به عشر. که یک نماز یک دهمش بالا می از یک دهم کمتر که اون روح رو نداشته باشه دقت کنید یعنی انسان توجه به باطن نماز نداشته باشه، اون ملک دارد که نمازو مثل یک کهنه پیچیده ی تو صورت نمازگذار می زند که همیشه من شرمنده کردی. هر وقت می خواستم چیزیو برم بالا با بهشت و سرور، افسردگی و حسرت رو برای من بار مقاوم چه نمازیه برای من؟ من ببرم بالا همین نماز تو صورتش میزنم که درد خودت میخوره بنابراین عرض من این است که رابطه بین ظواهر فقی که ما میخوانیم و باطنی که اصلا شاره مقدس برای اون این رو فرمود رابطه ظاهر و باطن است و کسانی که در ظاهر دنیا یعلمون از ظاهرا من الحیات دنیا دقت بفرماییدا یه حیات دنیا میفرماید اما وقتی نوبت به آخرت می نه این و هم ان حیات الاخرت و هم قافلون فهمت هم ان الاخرت و هم قافلون یعنی گویی این با این ظاهر یک باطنی دارد که این باطن کل زندگی ما رو تشکیلون ده اصلا ما تو آخرت گویی با حقیقت زندگی دنیامون داریم کار میکنیم خب وقتی که ما در فقه از اصغر بمانیم و هیچ توجه مرتب بالاتر نداشته باشیم اعظم مشتهدین عصر خودمون هم بشیم یه پوسته خشکیو داریم که به تعبیر بزرگان ما در کتابهای اخلاقشون فراوان هم دارن که وقتی از این دنیا به اون دنیا میروند تو همین دنیا هم اینطوره تو همین دنیا هم شما در نظر بگیرید انسان یه سه ما فاصله میفته مباحثات علمیش ضعیف میشه انصافا اون تدربش در مباحث علمی ضعیف میشه داره رحمت کنه استاد استاد ما میفهمند مرحومهای بورجردی شنبه ها که این درس میگفت یه مقداری احساس میکنم اجتهادم ضعیف شده چون پنج شنبه بود جمعه بهش فاصله افتاده این ایشون در واقع تذکری بود برای طلبه ها که دائم بایستی طلبه در حال تحصیل باشه خب چطور می شود در عالم دنیا آدم ده روز 20 روز یه ماه دو ماه یک سال دو سال فاصله علمی بینش بیوفتد اون قوه اجتهادش اون تسلطش ضعیف میشه تو اولمه برزخت ما به فقه اصخر کاری نداریم ما با شکیات نماز با احکام تهارت و نجاست با احکام بی و شراع و مزاربه و مساقات و عقود و ایقاات و این چیزایی که خوندیم کاری نداریم و وقتی کاری نداریم یعنی چیه؟ یعنی مشتهد مسلم در فقه اصخرم باشیم کم کم فراموش میکنیم. میشیم یه عوام. یا عوامی تو اون عالم نورانیت اگه نیورده باشه این اصطلاحات هیچ به کارش نمیاد پس ما برای این این آیه شریفه شاهد است بر بیانی که مرحوم علامه دارد که یعلمون از ظاهرا ملل هایات دنیا یعنی کسانی که در فق فقط به اعتباریات شاره مقدس بسنده میکنند فقط میخوان اس کوی کنند ظواهر شرع مقدس رو اینها بدانند که وقتی به اون عالم می این استنباطات اونها یک پوسته است که همینجا باقی می مانند. یعلمون از من الحیات الدنیا و هم ان و هم قافلون این مطلب اول مطلب بعدی که خود مرحوم علامه در المیزان به مناسبت و باز ارز میکنند مرحوم امام هم در کتاب های متعددشون دارند یک برهان عقلی بسیار قویم و محکمی رو اقامه میکنند بنده می‌خوام عرض بکنم ما وقتی به برهان نقلی اکتفا میکنی هم در به ظهورشون ظهورش کسی شک کنه هم در سند روایتش بالاخره برهان عقلی انسان اقام بکنه آرامش پیدا میکنه برهان عقلیش همون برهان معروف برهان لوتیست ما در کلام خوندیم در به اصطلاح محکم‌ترین براهی نیست که هم متکلمین اهل سنت هم متکلمین شیعه بهش اشاره کردن از مرحوم خاجه گرفته در تجریدش تا شاگردان ایشون مرحوم علامه هلی در کشف المراد مفصل این قاعده رو توضیح داد و آثار قاعده رو تو بیان می‌کنه قاعده چی است قاعده این بزرگواران فقط در محدوده کلام مطرح نمی نمیارن تو محدوده عرفان نمیارن در محدوده اخلاق بنده میخوام امشب بعد اخلاقی برهان لطف خدمت خدمتتون از کنم که مرحوم علامه اشاراتی دارند محاصل برهان این طوره. برهان لطفه که آقای در کلام نقل میکنن میگن که خداوند حکیم است و خالق حکیم کار گتره نمی کند این عقلا مسلم است بسیار خداوند انسان ها و حالا همه موجودات ولی حالا میمیم سراغ انسان ها انسان ها رو که خلق میکند بدون هدف نیست <تصفح> کار گتره نمی کند خب. هدف از خلقت چیست هم عقل حکم میکند هم نقل حکم میکنن که هدف از خلقت ارتق... نگاه کلامی ارزنه میکنن موت کلمین همین میگن خدا... خداوند انسان خلق کرد انسان عبد است عبد میداند وضائفی در قبال مولا دارد و چون نمیداند اون وضائف چیست بر مولا واجب است که اون وظایف رو برای عبد بیان کند خب یک موالی متعارف هم همینطوره عبدی که خریداری میکنن یا کنیز یا خریداری میکنن خب غلام باید بدون مولا چی میخواد دیگه و الا توبیخ کردن قلام برای مولای حکیم این عمل لغذه خب خداوندی که ما را خلق فرمود طبعا باید بیان کند که من هدفم از خلقت شما چی بوده از شما چه انتظاراتی دارم اگر شما اون کار رو نکردید من شما رو عذاب میکنم پس باید مولای حکیم بگوید چه کارهایی بکن یا نکن تا مبتلا به عذاب من نشوی اینو میشود محصول برهان لطه در کلام پس از اینجا ثابت میکنن وجوب انزال کتب وجوب ارسال رسول حتی مرحوم اللامه هلی در کشف المراد میگوید اثبات وسایت معصوم بعد از رسول رو هم با همین برهان ما میتونیم ثابت کن بماند من چون وقت وارد اون مقوله نمیشن اما ما نگاه اخلاقیشو میکنیم ما می میکنیم بله یک متکلم میگوید که خداوند حکیم انسان رو که خلق می کند عبد باید بداند چه بکند خب چرا باید بداند برای اینکه مولا او رو توبیخ نکند ولی ما این است که آیا فقط مولا اون بالا نشسته به نگاه متکلم که فقط عبد رو به جهنم ببرد یا به بهشت یا نه صحبت در خلقت صحبت در مدارج قرب است سیر در مراتب عالی توحید است تا رسیدن به مرتبه فنای در توحید پس اگر می فهمید به ما خلقتل جن الا لیعبدون ای لیعرفون ای لیوقنون چه دارد وعبد که حتی یعطی یکل یقین. بنابراین اگر هدف از خلقت عبادت است عبادت به تعبیر همه بزرگان من حالا اسم عرومه علومه عروم میارم چون اشرافم به مبانی ایشونه مردم الله این فهمد تا زمانی که عبادت عبادت خالصانه نباشد عبادتی است که درش رگاه های شرک است عبادت شرکالوت مقبول نیست ولی چاره ای نیست که انسانی که در طریق سلوک مدارج عالی و فنای مطلق نرسیده است با همین عبادت ناقص که آیه میفرماید و بود ربک و کدوم عبادت عبادت شرکالوت. به قرینه چی به قرینه مقیاش وعبدربکه به عبادت ناقص به عبادت شرک مثلا فرض کنید که مشتکانه حتی یعطی کل یقین وقتی به یقین رسیدی عبادتت میشه خالصانه پس کسی نگوید پس من عبادت نکنم چون عبادتم مشتکانه است. من فقه اسخر رو نخوانم التزام نداشته باشم دقت نداشته باشم چرا چون با فقه اسخر من کجا به فقه اکبر میرسم همه شرکه آیه میفهمد نخیر و بعبد حتی حتا یتیکل یقین پس ما این استفاده در میکنیم مولای حکیم فقط برای تشویق و تنبیه عبد رو خلق نکرد در نگاه عارف اصلا هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام خلافت الهی است رسیدن به مقام نفخت و فیه من است رسیدن به مقام عالی ترین مرتبه حمل امانت تا به اونجا که برسد به مقام واستنع تو کل نفسی که خطاب از ده موسی علیه السلام است خب اگر بند این گونه برهان لوت را تقدیر کنیم که برهان لوت میگوید خداوند حکیم در اعلام مرتبه حکمت انس هر موجودی که انسان باشد گل سرسبد خلقت او را خلق کرده است که او را به عالی ترین مرتبه حکمت برساند چون حکیم کاری را لغو نمی کند آن چه می کند می شبیه خودش بشود عالیترین سن یک سانه این است که مثل خودشو به وجود بیاره ولی در مرتبه مصنوع بودن ولی لذا برهان لوس در قالب بحثای اخلاقی و به تعبیر معنوی اینطور طور می شود که خداوند باید تمام واجب است بر خداوند و یلزم و علل حکیم اینو میگن. بر خداوند واجب است تمام ابزار سلوک عبد را تا رسیدن به اعلا مرتبه مقام خلافت برای او فراهم کند این نه تنها لطف مقرب است بلکه لطف محصل است که لطف محصل مق... بالاتر از مقرب است معمولا در کلام سخن از لطف مقرب است ولی لطف محصل محسل یعنی چی؟ یعنی باید تا زمانی که در تحت هدایت ایسالی بنده لایق بتواند از این مراتب دستورات فقه اسقر که اعتباریات است بتواند اروج پیدا کند تحت هدایت نه ارشادی هدایت ایسالی هدایت ارشادی به این معناس دقیقا میشه فقه اصقر پیغمبر اکنم اینطور میفرمایم ای بندگان نماز اینطوری بخونید روزه رو اینجوری بگیرید چیزایی هم که نگفتن به امیرالمؤمنین محول می‌کند امیرالمؤمن نفرود امام صادق حضرات عیمه اطهار در طول 250 سال مثلا به تعبیر مقام معظم رهبری عمر اون انسان کامه تمام احکام دین رو در حدی که میشد بگیم اگرم نگفتند یا روایتی نبود به اصول عملی مراجعه کنیم خیلی میشه فقه اصغر ولی خداوند میفهمد من این رو در هدایت ارشادی به شما گفتم اما یک هدایت دیگه ای دارم برای خواص. اون چیز کسانی که به طور جد در ارتباط با سید در فقه اصقر به سوی ما می حرکت کنن اون کسانی که واحتده وا و نیا کنی باب افتعال اون کسانی که شائقانه آشقانه با اختیار خودشون با جدیت در مسیر فقه اصقر حرکت کردن ما ازشون دستگیری میکنیم ما اون رو تحت هدایت ایسالی قرار میدیم، هدایت ایسالی ابتکار مرگوم علامه است تا اونی که بنده ندارم قبلتر اسمش قبلتر نفرمدن، ایشون فرمون هدایت ایسالی. یعنی چی یعنی که خداوند قدم به قدم میفرماید من او رو دست تربیت خودم قرار میدم با چه چیز با فقه اکبر اینجا دیگه فقه اصغر کار میکنه ظاهر رو تعمیل میکنه روز به روز به هلاوت نماز او می افزاید. روز به روز به لذت بردن او از اون با خودم می افزاید. تا به اونجایی که میرسد رسد اقوم لن مقام عقله جای عقلش من مینشینم. یا حدیث قرب فرائز و قرب نوافل و که ملاحظه فرمودی نه پس بنابراین نتیجه که می خواستم این است که برهان لطف در کلام فقط عبد را بنابرا حکمت خداوند رو الزام میکند دلتا اقلا این ما که حق نداریم بگیم بر توی خدا واجب است عقل حکم میکند خداوندم رئیس الاغلاست لذا میگویند به وجب من الله شیخ رئیس میگه ادب بخرج بدیم نگه این علی الله با اینکه خداوند در قرآن خودش علال رو به کار میبره ولی شیخ میگوید نه بگید من الله ولی بر خداوند عقل حکم میکنند واجب است ابزار نجات بنده را از آتش جهنم نجات بدهد به چه چیز؟ فقه از ولی در این حال یک عارف یک انسان خلاصه متخلق میگوید نخیر بر خداوند در این حال واجب است که ما رو دستگیری کند تا آلی ترین مراتب خلقت این به عهده فقه اکبر است پس خلاصه خلاسه محصل ماحصااظ بگم این برهان عقلی میفرماید یک رابطهتنگ تنگ بین فقه اصغر و اکبر است ولی باز این مرتبه اول عرائزم ولی خواهش میکنم به این ظریفه بعدی خوب دقت کن معمولا در کتابهای اخلاقی غیر از مکتب مرحوم علامه و مرحوم امام میان میگن ما از سطح به عمق میرویم یعنی ما مقید میشیم به اینکه با همین ظواهر دین توجه داشته باشیم به باطنش نماز میخوایم بخونیم خود شارع فرمود چه کار کنید که حضور قلب داشته باشید تا بتوانید اون مراتب باطن رو کم کم تحصیل کنید اما میبینیم در یک معنای دقیق‌تر تر میگویند نخیر ما از باطن میتوانیم به ظاهر برسیم و به عبارت دیگر کسی که از همون ابتدای راه توجه به باطن نداشته باشد گویی اون ظاهر رو هم به درستی نمیتواند استنباد کند به این نکته لطیف تو گوزه های علمی ماست منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما نگاه کنید بذید من سیر قدما رو بگم. طلبه از روز اول که وارد حوزه علمیه میشد میگفتن آداب الموریدین رو اون حاشیهی جامع مقدمات یادتون میاد؟ آداب الطلاب بود، یادم نیست حالا چی؟ که دسترات اخلاقی که بعد طلبه یاد میگیره. بلا فاصله منیت المرید جزء درسی رسمی حوزه بود. و بعد درس اخلاق اسانچو به دروسی بود که نه ارزمی ولی در حوزه یک جایگاه خاص داشت چرا چون میگفتن طلبه تا محذب نباشد اون عمق مطلب رو نمیتواند بگیرد مطلب در فقه ها در اصول ها بذارید باز ما اینو بحث بحثو عقلی باز کنم براتون چون میگم برهان عقلی وقتی پشت قضیه انسان آرامش پیدا میکنه ببینید برهان عقلی مطلب به این ترتیبه که مرحوم الامه اگه انایت داشته باشید در بحث وحی و روح که در واقع اون رسالت و امامت رو به پیامبر اکرم و به دنبال او به اولیای الهی عنایت میکند میفرماید وحی یه چهره است یه جلوه است به تعبیر دیگر یک شعور عالی است برای کسی که به اون مرتبه عالی مقام ولایت رسیده باشه خب میگیم اینو برای ما باز کنید ایشون بیانش اینطور است ایشون میفرماید که خوب عنایت کنید من اینا رو پیشورد عرضه می کنم نمیدونم تا چقدر با من همراهی می کنید ایشون میفرماید که ما وقتی که به مراتب خلقت آلم عالم توجه میکنیم در آیات قرآن میبینیم خداوند در اولین مقام خود رو به عنوان خالق عالم معرفی می کند خلق از کلشه مثلا فرض کنید که فی تا ایام خلق السماوات سماوات بر عرف فی بسیار. ایام بسیار خالقیت عقل حکم می کند مالکیت رو خالق مالک است بسیار بدنبال مالکیت ولایت رو تا تا تعریف می کند. یعنی مالک ولیست لذا می لمن المل کلیوم نه مل کلیوم چون ملک یعنی کسی که هم مالک است هم حق فرمان فرمانروایی دارد بسیار خوب سوال بعدی این است خوب کسی که مالک است و ولایت دارد طبعا اگر حکیم باشد اون مولا علیه خودش را رهانه میکنه تدبیر می کند تمرین میدهد هدایت می کند این اختصاص به انسان هم ندارد لذار این تعبیر اینطور است که پس منابر این ولی امر و اولیای الهی در عوالم ملکوت فقیه عالم ملکوتن به اصطلاح ما چرا؟ چون ما دقیق کنید چی عرض ما؟, ما با فقه اصقر اصلا هدف اون چیه؟ از یک مشتهت ما کنیم شما این رسال رو نوشتی برای چی نوشتی؟ میگه برای اینکه تو راه و رسم بندگی در درگاه پروردگار رو با اینا که من در عبادیات و توسلیات بهت گفتم تو بتونی عمل کن حتی همین توسلیات رو هم یعنی اموری که قصد قربت نمیخواد مرحوم سید در مرتبه اسلام اکبر میگهد نخیر اینطور هم نیست در توسلیات هم شما موظفید که نیت داشته باشید لازه ایشون فهمد احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه اسلام اکبر به بعد میشه احکام اسنینیه دیگه خمسه نیست. یعنی چی؟ که تو مکته مرحوم علمم همین است یعنی اینکه سالک در مرتبه ابتدا بله مستحبات دارد، مکروحات دارد، مباهات دارد، واجبات دارد، محرمات دارد احکام خمسه تکلیفیه می شود ولی در بعد از مدتی که تمرین داد خودش رو کم کم نفس آماده شد در مرتبه اسلام اکبر می مباهات رو شما باید به نیت امتصاله امر واجب که این مقدمه است من مثلا فرض کنید قضا غذا می خورم برای اینکه این غذا این بتواند تقویت کند من رو که بتوانم واجبات رو انجام بدهم پس غذا خوردن من مستحبه اگه من میل به غذا نداشته باشم نباید غذا بخورم پس من غذا رو میخورم برای امتصال امر الهی که دو بخور برای اینکه بتوانی بندگی درستی بکنی پس غذا خوردن من می امر مستحب و در نتیجه متصل می شود به واجبات یعنی به لحاظ نیت من لازم است بخورم مستحبات رو هم که باید ملحق کند به واجبات به این معنا که بنده در حد توان خودش باید امتصال امر مولا را بکنه مکروهات رو هم ملحق کند به محرمات پس مباهات یا ملحق شد به محرمات یا یعنی غذا خوردن رو شکم سیری برای من حرام است من نمیخورم موقعی که احتیاج به غذا خوردن دارم باید ملحقش کنم به واجبات من باید غذا بخورم. مستحبات و هم همینطور پس ما اح... احکام خمسه نداریم احکام اسنینیه داریم میریم سراغ توسلیات من باید برم معامله بکنم عق ا... ا... نکاح فرض معامله فلان باید تکلیف ما انجام بدم من م... به ای شراع میکنم برای اینکه وظیفه دینی ما انجام بدن. پس می شود گویی از اول عمرش تا آخر عمرش گویی دائما در تحت عوامر الهی داره امتصال امر مولا رو می کند. پس ما دیگه اصلا توسلیاتی ما نداریم. همش می شود تعبدیات. همش باید اموری که باید به قصد قربت انجام بگیره. بس روی این حساب اگر ما رساله عملیه رو ما بخوام تقسیم کنیم به معاملات و احکام عبادات و مغارناتشون. نه حرفا نه این حرفا نیست. برای یک سالک که در فقه عصقرم کار میکنه تمامی توجهش بینه است که من چه بکنم که آداب بندگی رو به سوی او عمل بکنم. خدا رحمت کنیم بزنیم یاد خیلی بکنم از مرحوم آی حسن آیت الله حسن زاده آمولی. ایشون مرحوم آی حسن ز تعبیرش این بود. میگفت این که روایت دارد که القرآن معدوبت الله فتعلموا من معذوبتی مستتعتون این ترجمه نمیگفت ایشون می میگفت یه ترجمه است که معدوبه رو ترجمه میکنن به سفره که میگن ترجمه متعارف اینطور است که این قرآنی که ما حالا اسمشو میذاریم کتاب فقهی ما کتاب اخلاقی ما، کتاب عبرت ما، اینه دیگه این به اسم سفره که در مقابل شما گسترده شده که در طول عمرتون از این سفره بهره برداری کنید. ایشون فهمتن معذوبه نخونید، معدبه بخوانید. خب معدبه چیه؟ ایشون میگه مستر نیمی از ادبه. معناش اینطور می شود این قرآن مجموعه ادب الهی است. تو عدب بندگی رو در عبادات، در داستان در توسلیات در همه امور قرآن تو باید یاد بگیری چجوری یک بنده معدب در درگاه پروردگار باشه میرید دیگه اصلا این حرفا میره کنار خیلی نگاه عوض میشه به فق به نکاح حتی به چیزهایی که جنبه شهوانی داره خیلی عوض میشه به غذا خوردن خیلی عوض میشه حالا تازه این بذارید محنو ادامه بدم پس در این نگاه گویی. ولی خدا ولی ام که مظهر اسم ولی خداونده مظهر اسم بگیم مالک خداونده مظهر اسم تدبیر خداونده فقیه عالم ملکوت هست در تمشیت امور عالم ملکوت در سیر به سوی حق یعنی عالم ملکوت ملائکه الهی سایر موجودات ملکوتی دائم نگاهشون به ولی امرشون هست که شما چه فتوا می دهید؟ که ما چه بکنیم که در سیر تصفیحی بتوانیم با سرعت بیشتر به سوی پروردگارمون حرکت کنیم لذای این دوتی شریفه که سبهنا و سبهت الملائکت به تصفیحنا اول من راه و رسم بندگی رو به اونا یاد دادم بعد اونها به طبعیت از ما راه و رسم بندگی یاد گرفتند. خب می شود چی؟ می شود فقه اکبر در عالم ملکوت که گویی لذا آیاتو نگاه کنید یصبت و رعد و همده یا در اون آیه شریفه دارد یدعون ال السجود فلا اون در قیامت به یه عده گفته میشه باید در برابر خداوند سجده کنید خب حتما باید سجده کنه این ملکوت که در شیطان نیست که بگوید سجده نکن میخواد سجده کنه نمیتونه چرا چون در فقه اصغر مونده بود چون در اعمالش حضور قلب نداشت لا یستتیون میخواد تصویح بگوید نمیتواند بگوید لا یعزن اللهون اوز خواهیه در قیامت چیست تصویح پروردگار عبادت پروردگار میخواد بکند نمیتونه بکنه بهشون اذن داده نمیشه اینا است برای ما به اخلاقی پس اینا از اینجا درس میکنم اگر که در عوالم ملکوت امر ولی امر در دستورات عبادی ملائکه الهی برای اونها مقرب است به طریق اولا ولی ام اون روح ولایت در عالم ملک میشود گویی اون الهامات غیبی خوب دقت منچی عرض میکنم الهامات غیبی که به رسول اکرم در قالب وحی میشود و در نتیجه احکام رو میفرماید تعبیر علام این است وحی یا شعور مرموز حالا این فارسی فارسیش ترجمه است. یعنی ایشون میفرماید وحیی که خداوند به پیغمبر میفرماید با وحیی که خداوند به زنبور اصل میکند همش وحی است. مراتبش متفاوت است. اون وحی در مرتبه تشریع است، در مرتبه عالی مقام ولایت است. همون الهامات قیبی برای زنبور اصل در نظام تکوین است. حالا عرض من این است. اگر این اصل عقلی رو ما بپذیریم که یک روح هست در کل عالم که در هر مرتبه از عالم وحی خاص خودش رو کند. وقتی میرسد به مرتبه عالم ملک در حال شب قد بگید در شب مبعث بگید در اوقات مختلف بگید به اون کسی که دقت این نکته ارزشاً اینجاست به اون کسی که استعداد دریافت وحی و دارد به وحی می شود. چه کسی در عالی ترین مرتبه استعداد دریافت وحی را دارد؟ می شود رسول اکرم می شود حضرت موسی علیه السلام می شود انبیای اول ال تا نوبت میرسد به ائمه اطهار علیهم السلام حضرات ائمه عليه السلام محدث هستند بهشون وحی نازل می شود ولی فرشته رو نمیبینن ولی الهامات غیبی می شود و با عالم معنو ارتباط و قرار می کند. خب نکته لطیف مطلب اینجاست. اگر از این زاویه مسئله رو بررسی کنیم یک فقیه اگر بخواهد استنباط فهم امام معصوم رو در یک مسئله بکند آیا نباید به امام معصوم روحا نزدیک بشود؟ تو این عقل حکم میکنه. تو چطور میتوانی هنوز استعداد تهارتی در مرتبه نازله امام معصومو کسر نکرده انتظار دارید اون وقت به تو بشود این حقایقی رو که امام معصوم در خو... روایت داریم حضرت میفرمایند اگر شبهه های جمعه نباشد علم ما تمام می شود این معنا داره این حرف یعنی امام معصوم هم گویی دائما در درگاه پروردگار التجا دارد استرار دارد مناجات میکند تذکیه در مرتبه خودش میکند قل زد رب زدنی علم تا اینکه بتواند از مراتب عالیتر وحی الهی بهرمند بشود خب ببینید من اینا رو عرض میکنم برای چی؟ برای اثبات خودمون حالا اونها در جایگاه خودشون ما اصلا تو اون هیته ها فقط در حد عقل ناقص خودمون میتونیم وارد بشیم ولی برای یک فقیه بخواهد فتوا بدهد آیا این فتواش بخواد به اون مقام فتوای استنبات نظر امام معصوم رو بخواد بکنه که همه فوقه ها هم همینه یعنی تلاش یک فقیه خواه در اصول عملیه خواه در سایر اموری که مدرک داره سند داره استثاراتی که از روایت میکند استثاراتی که از آیات قرآن میکنه خب استصहारी که امام معصوم از یک آیه شریفه میکنه با استصहारी که یک فقیه میکنه ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه چرا تفاوت داره چون اون به روح معنا ارتباط داره لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تا کسی متحر نباشد چگونه میتواند به اون حقیقت برسد این برهان عقلی روی مبنای مرحوم علامه که وقتی ما مدارج وحی رو زو مراتب گرفتی پس استنباط هم زو مراتب میشود. و شاهدش هم آیه شریفه و اوحینا الیهم فیل الخیرات و کزالکر بله اون آیه رو من بله بینید این آیه شریفه که من کجا نوشتم که خدمتون بخونم بله حالا ها بله ببینید میفرمد آیه که میخواهم بخونم آیه 73 سور مبارکه انبیاء و جعلنا ائمه یهدون به امرنا که مرحوم الله فهمت و جعلهم یهدون به امرنا این در مورد ائمه اطهار و انبیای الهی چند در سوره مبارکه انبیاء هم هست که سیر انبیا رو ذکر می‌کنه بعد فهمت ما اینها رو رهبران امت قرار دادیم و کذالک جعلهم ائمه یهدون به امرنا ولی دقت اینه یهدون به امرنا حالا امرو اگر معنای متعارف بگیری، یعنی اینا رو ما،, ما اینا رو رهبر قرار داریم که امت رو به اوامر ما هدایت کنن ولی مرحوم الله این امر رو شما بگید آلم ملکوت یعنی اصلا ما اینها رو قرار داریم که امت رو به اوالم ملکوت اینا رو در سطح عالم نگه ندارن در آلام ملک نگه ندارن اینا رو به آلام ملکوت هدایت بکنن خب اینها هستن بسیار خوب بعدش چی؟ و الیهم نه ان افعل الخیرات فعل الخیرات لذا ایشوما این برای خاص انبیا نیست این برای کسانی است که یک روح متحری دارند یک نزاهت نسبی کسب کردن خداوند علاوه بر این احکام ظاهری فقهی که انسان در اصول میخواند در قواعد فقهی می میخواند، تو مدرسه میخواند. یک یک است که این الهامات تحت زابطه فقهی و اصولی نیست به نزاهت روح و ارتباط دارد که او استنباطی که از یک آیه می کند این استنباط با استنباط یک عدیب فرق می کند با یک استنباط یک لغت شناس که در آیه شریفه می خواد لغت رو کشف بکند فرق می کند از کجا می گوید اوحی نا الی فعل الخیرات و اقام السلات. و ایتا از زکات و کان و لنا آبدین چون چقدر وقت نیم آقا؟ من زمان دارم ساعت ده وقت من تموم میشه یه رو دیگه مونده؟ پس من برد جمع کنم عراوی زمان ببینید یعنی آیه حالا حتما عزیزان الحمدالله همشون اهل ادبیاتن حتما زرافت های آلای ملاحظه می فرمایید اوهای نائلی هم فعل الخیرات بعد دارد اقام از بعد دارد کان و لنا آبدین و از این قبل. پس نتیجه که از اروازم خواستم بگیرم این بود که ما در برهان عقلی مسلم می دانیم که کسی می تواند فقیح بشود آن فقیهی که عمل او مرضی رضای امام زمانش باشد که بتواند امت رو به سوی عالم ملکوت با همون فقاهت هدایت کند. این مطلب اول که طول کشید بنده میخواستم نیم ساعت تمام بکنم یا اون آیه شریفهی که مرحوم شهید نقل میکند که شهید اگر نکرد در مونیت مورید یک عبارت زیبایی داره ایشون میفرماید به دنبال البته بیان مرحوم بسلا بله. نه که به دنبال ایشون استفاده کرده مرحوم ملو محسن فیض کاشانی که اونم باز استفاده میکند از کتاب چیز امون، چی است مال محی الدین بیزا فی شرح بگید اسمش من احیاء علوم غزالی. خوب غزالی در اونجا میگه که یه خیانت بزرگی که به اسلام شد و به قرآن شد تحریف الفاظ قرآن بود تحریف ظاهری نه چون قرآن ظاهرش همین قرآنه ولی الفاظ اومدن از جای خودش تغییر دادن مرهوم امالو محسن تعیید میکنه مرحوم شهید تعبیر زیبایی داره ایشون فرماید اصلا وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم اصطلاح فقه بعد چند اصطلاح دیگر هم ایشون به بره میگه اصلا فقه در میان قدم ما اینطور که ما مصطلح بود اصلا نبود ایشون میگه این اصطلاح فقه در میان مصطلح است که اقبارت باشد از دانستان احکام معاملات و عبادات و اینها برای فتق ردق دعوه‌های عرفی مردمه در حالی که شورای مقدس هرگز مرادش فقط این نبود شاره فرمود لیتفقهوا فالدین و لیونزرو قومهم نه لیؤلم قومهم زیرا جهو الی یعنی باید یک فقیه صاحب نفس باشد یک فقیه باید هوشدار بدهد مردم را بگریاند انذار بدهد بترساند از قیامت و این کسی که فقط احکام ظاهری خونده که این, این حالت رو پیدا نمیکنه خوب خب این دلیل نقلیه ایشون که من عرض کردم اما عرضی که میخوام خدمتون بگم چیز مهم است که بنده درد واقعا اعتقادم اینه الان روزگار ماست و اونی که ببینید اصلا ما در حوزه ها درس که میخونیم باید به این معنا درس بخونیم که ما میخواهیم جا بگذاریم جای پای امام زمانمون به عنوان نماینده امام زمانمون به خصوص در نظام ولایی یعنی یک فقیه در بعد از انقلاب نگاهش به فقاهت باید نگاه ولایی باشد نگاهی این باشد که من میخواهم بخشی از حکومت امام زمان رو اداره کنم حالا ببینید خداوند درباره مقام ولایت تعبیر دارد تعابیر گوناگون یکی از تعابیر که در بیشتر در باب ولات شیطان است تعبیر ملع دارد یعنی کسی که تو جامعه چشپر کنه خب در جامعه قدیم فقیه فقط کارش بود فتوا میداد هیچ کار اجرایی در اختیارش نبود در نتیجه ملع به معنای قرآنی نبود که قدوه باشد استه باشد هادی باشد مقتدا باشه، ما رو پر کنه. اما در نظام ولایی حتی در یک روستا، نگید ولی فقیه به معنای مرحبر معظم انقلاب. نه خیل. در هر امام جمعه، ارز می میکنم، امام جماعت یک روستا ملع است. ملع در اصطلاح قرآنی اصطلاح خاصیه. یعنی چی یعنی هدایت پروردگار اگر میخواد از اوال ملکوت جاری بشود برای مردم از طریق اون هادی از طریق اون کسی که اسوه هست و مدعی من نایب امام زمان هستم مدعی که من دارم جای پام و پای امام زمان میذارم دارم حرفای او رو میزنم پس منو این در نظام ولایی گویی هدایت مردم در اختیار او است و اگر این فقط بخواد به فقه ظاهر بسنده بکند این مردم رو هم در همون حد کوچیک نگه هم داره چرا جامعه ما الان انقدر ضعیفه چرا جوانهای ما با یک نسیم محکم بیدینی که میاد دختران بیهجاب میشن پسرامون اصلا چیزی از دون نمیدونن جز زواهر چرا؟ به خاطر اینکه اون کسانی که چه پدر و مادر چه اون کسی که موظف است که به اون دین رو القا بکند دین رو در حد یک سطح خوش نماز بخونه خب من نماز نمازختی میخونم این سواله برای بچه ها من نماز میخونم و نمیخونم هیچ فرقی نمیکنه نمازم هم قضا میشه هیچ اتفاقی بهم نمیافته یکی از بچه ها بید من میگه آقا من خدا رو هم اعتقاد نداشته باشم اون خدایی که نازم عالمی شما معرفی کردید از فردا من به ناظم عالمم معتقد نباشم نون تو سفرهم همون. آبم که میخورم همونه زندگی من همونه. پس این خدا کجای زندگی منه؟ این نمازی که تنها ان الفحشای و کجاست؟ ببینید وقتی یک کسی به اسطلاح کتاقت بود شاگرداش هم کتاقت بار میاد. کسی که خشک دین رو معرفی بکند یک فقاهت خشکی رو منتقل بکند طبعا مردم هم خشک بار میاد. و این گناهش در اون روایت امیرالمومنین هست ان الله لم یأخذ منا الجهال ان یتعلمو حتی اخذ من العلماء ان يعلموا یعنی اگر جهال در قیامت به خط میکنن یاد یاد نگرفتی علما رو هم به میکنن چرا یاد, یاد ندیدی میگه من یاد دادم میگه فقه اسخر رو یاد دادی خوشکش رو یاد دادی چرا روح دین رو یاد ندیدی چرا لذت بردن از نماز خوندن رو یاد ندیدی چرا اون با قرآنو به اون معنا که طرف بود بهترین لذت‌های زندگیش اونسه با قرآن و چه چوری یاد نداشتیدش می‌بینید شما خب الان دارید می‌بینید ما دیگه بزنید با هم بیرودروسی حرف بزنید شما میرید حرم و طهری امامش امام رضا علیه السلام طرف میگه که زیارت کنید موبایل دستش و پشتش بزریه اینجوری میخواد عکس بگیره یعنی یه ادب پیش پا افتاده در برابر امام ایش ندادن می‌بینید من می‌خوام بگم این تقصیر ماهاست چرا؟ چون در فیقه اصقر موندی بنابراین در جامعه ولایی که نوعی ولایت دارد فقیه ولو در کوچک تا بزرگ موظف از اون هدایت ایسالی امام زمان رو هم ولی امت منتقل میکنند این مسئله بعدی من و اما عرض آخر هم آقا من وقتی که من وقت رفقه رو, رو نگیرم ببخشید ایسال ده دقیقه بر. ببینید حتما عزیزان فرمودن من عرایز فراوان بود که میخواستم خدمتون بگم ولی با عنوان چیزی که پیش پا افتاده ترین قدم ها در سیر از فقه اصغر به فقه اکبر که عین عبارات حتما مراجعه کنید عین عبارات محروم سید بحرول در اون رسالش ایشون فهمد در درجه اول دقیق انسان فقه اصغر رو بداند که طبعا با نماز غلط، با روزه غلط، با عبادات غلط که هم خودش غلط بداند هم به دیگران غلط منتقل بکند. قطعاً انسان قدم از قدم برنمی‌دارد این درست ولی نکته مهم این است که در همین ایام بخصوص بنده ماه محرم رو بالاتر از ماه رمضان میدانم علت این است که در ماه رمضان و حتی در دهه زل هست که دارد ایامش افضل ایام است ولی ماه محرم توش یه چیزی هست که تو اون ماه نیست. تو ماه محرم گریه است. اصلا گریه موضوعیت داره. ما تو ماه رمضان موضوعیتش روزه است. گریه از لوازم روزه است. تو ماه ذی روز عرافه رو داریم موضوعیتش دعا گریه از لوازم دعا اما ماه محرم ماه گریه است. و گریه یکی از میان میانبرها برای عبور از فقه اسغر و فقه اکبر لذاست که یکی از چیزهایی که بنده بسیار توصیه میکنم این است که یعنی توصیه استاد بود بنده که قابل نیستم ولی توصیه استاد و مرحوم آی بهجت عایت الله بهجت که روزه رو به طور هفتگی حداقل در ماه محرم از برنامه زندگیتون حذف نکنید نمیگم برید روزه که بگید وقت نداریم خودتون برای خودتون روزه بخورید خودتون برای سید و شهده برای امام زمان روزه بخورید یه دفترچه آدم داشته باشه مروه استاد داشت یه دفترچه آدم داشته باشه توش اشعار زیبا مقتلی چیزی حال بکنه روزه بخورید گریه قرار داد بستن در ماه محرم خیلی ملتزم می انسان رو. برای اینکه من مقید می شوم اون پنج دستوری رو که مرحوم علامه به شاگردانشون می فرمدن ملتزم کنن انسان خودشو این پنج دستور رو از ماه محرم تا یک عربه حالا اگر از اول دهم محرم که خیلی خوبه که گذشت اگر نه تا آخر ماه سفر ملتزم بشه با امام زمانش به خصوص با سید و شهده و علل اخص با قمر بنی حاشم چون با ادم با قمر بنی هاشم مخصوصا شما ها که اغلبم اهل آذربایجان هستین هستی هم یه حساب خاص باز می قرارداد قرار داد بنده که من با شما تعهد می کنم پنج دستور رو عمل بکنم متقابلا شما راهی به سوی فقه اکبر رو برای من باز کن هر مرحوم اصلی آقای قاضی از حرم متحرق قمر بنی هاشم درها برش باز شد. عجیبی نه ایشون می‌فهمد من اول خدمت علی ابن موسی الرضا علیه السلام بودم ایشون منو حواله داد به قمر بنی هاشم یعنی در گویی از طریق ایشون باز می‌شوه قرارداد با ایشون ببندی در پنج دستور هم همه دیگه بارها گفته شده دیگه نماز و نماز اول وقت و دائم بودن و قرآن مقید باشه انسان حداقل روزی پنج صفحه مرحوم ای آقای آیت الله کشمیری که یک جزء میفرمودن حتی من با بعضی از شاگردانشون ارتباط داشتم در کم کم به ما میگفتن سه جوز ولی حالا سبوحش مرحوم استاد رو ربع جوز یه حزب پنج صفحه ولی انسان مقیید باشه و بعد هم دائم الوضو بودن نماز شب به خصوص که اصلا اعتقاد بنده این است اگر یک کسی در مسیر فقاهت حرکت میکند و نماز شب نمی خودشو خودش زحمت نده این اذیت داره خودشون میکنه نماز شب برای کسی که در مسیر فقهت داره حرکت میکنه نازل منزله نماز واجبه. شاهدم دارم اما این اینا احساسی نیست این که می‌فرمايت و من الليل فتهجدت نافلتا لك. عسى ان يبعثك که مقام من محمودا همین رو که عرض میکنه و دنبالش نخونم تا میرسد به حال این که عرض کردم این سوره مبارکه اسراء بود. این آیه شریفه سوره مبارکه مزمل خیلی شاهد خوبی است که می‌فرمايت ان النواشه اللیلیه یا اشد و وطئا و, و, و قیلا یعنی چی یعنی انسان بتواند به خوبی استنباط کند اقو و قیلای یعنی به تو یک گفتار قوی رو ارائه میکند چی نماز شب و بعد یک پای مردی یا اشد و وطئا یعنی آدم وقتی به یک استنباطی رسید رو استنباطش محکم ایستاده ب... ما با رویکرد فقیه عرض میکنم حالا یکی کسی تو مسائل اجتماعی میخواد یک کاری انجام بده در مقام معظم رهبری صفت در برابر دشمن میایسته نمیترسه این و اه اه اه اه چیز هست اون اشد و بطعنه. ولی برای یک فقیه اشد و یعنی کاملا نماز شب به انسان پایمردی میدهد استواری در گفتار میدهد و از این قبیل رضا مرحوم استلیغا قا دارد که مرحوم علای میگه من اولین برخوردی که در نجف با مرحوم استلیغا کردم این بود که حالا در کجا خاطره هم میسه ایشون نفرمود گفت از ایشون گذاشت رو شونه من گفت پسرم اگر دنیا میخوای نماز شب بخون آخرت هم میخوای نماز شب بخون خب برای فقیه هم دنیا میخواد هم آخره و بعد هم به خصوص اون با قبرستان در قومم که الهمدلات شرایط محرد این پنج دستوره این مطلب اول مطلب دوم که ظاهرا وقت بنده تمام است این است که یک تقیدی عزیزان داشته باشند با امام عصر به طور منظم در طول شبانه روز این غیر از زیارت آشورا که سیره همه بزرگان اخلاقی ما بود اینو مرحوم آی موسوی در اون کتاب مکیالون مکارم به عنوان واجبات شیعیان ذکر می کند. که ما در برابر امام زمانمون که ولی امر ماست و دائما هم ما از هدایت ایسالی او چون فقیه از هدایت ایسالی او برخوردار است استفاده می کنی. موظفیم که هدیه بفرستیم و هدیه که انسان می متقابلا درخواست عنایت بکنه این هدیه میتواند تواند دعای عهد باشد میتواند زیارت آل یاسین باشد میتواند سایر زیارت باشد ولی انسان بیتوجه به امام زمانش نباشد این عرایز بنده مطلب بسیار زیاد بود ولی توفیق حضور کم داشتم اگه انشالله توفیق بشه در اوقات دیگری که در تبریز و جاهای دیگه خدمت سربران ما از زم میرسم بتونم عرایز و نیراسی که انصافن از بزرگان ما به این بنده در حد استعدادم رسیده خدمت رو اگر هم هست که ما در خدمتیم. حالا نمیدارم جماعی نعیمه این فرصت هست. رفاقا اگه سؤال داشته باشم در خدمت. بله، دیگه حالا... بعدش برنامه‌ای دارم. حالا... من آمانم هستم اگه سوالی دارم. اگر هم نه که دیگه رفع زحمت کنم. خب، سلباتی خط بفرمید. زهرن سوالی ندارم.